صلی الله علی سید رسول الله، و آله طیبین و طاهرین و محسومین و لعتا دائمت و علی اعدائه مجمعین و رحمتی که یا ارحمت راحمی هر در بحث تفیل مردم شیست رضان الله ساله علیه یکی از خروعی رو که در وقت پتفیف قرار دادن این شد که اگر جنب شد بین پتفیف و ربا در اینجا به اصطلاح خودمچیه سپرد کردن مردم شیست حضرت زاهره این بار از مرهوم شیر میخواستن مسئله عنوان این شا کنن با نتیجه ای که گرفتن خیلی روشنگی از کدم در اینجور مساقه باید به دنبال اون نکات زیر و اساسی در ایشه میشه ایش مرهوم شیر خاندن در, در من بر این که بحث روشن پر بشه تقدر اشاره از میکنم که اگر عنوان اینچا بر عنوان کلی باشه بگه ده کیلو به مثلا ده کیلو و بعد هشت کیلو تحلیل اینجا درست این مسئله که شیخ خانزم این روی تقریبا در مبانی درسته این جای بحث نیست دیگر اونجایی که جرد حلال موضوع معین اما از گفت این گندم رو پروخته حالا یا به اعتقال مشتری یا در صورت اعلام باید به نحوی که اعلام باید جز احض قرارش نده این به اصطلاح اون احض قرارش نده اون رو که اعلام بکنه که به تیزی که اعلام داخل در عنوان انشا نشه این نکته. اون اعلام رو داخل نکنید ایشون فرمودن که فسادت معاوضه کمی جمعی لزوم ربا این مبنیس بر این نقطه که میخواد ایشون بفرمان که این معامله اگر این طور باشه به لحاظ تطفیف حرام نیست به لحاظ ربا اصلا اگه این ده کلو جن... این گمزه رو فروختم به ده هزار که این هم ده کلوز اعلام کرد که بعد درمقد هشتی گمزه رو در این مورد مردم شفت در بحث تطفیقش وارد نشدن لیکن از عبارت ایشان اینه که مثلت این جلد محاوضه اگر قنوان این او خود واقع خارجی رمسه که انما در نظر شیخ مسلمه که اگر مشکل ربا نباشه دلحاظه تطریف باسه نیست این این یعنی چون ای ما دیده همه کتاب رو بیارم این کتاب این فاضل محاصره که او یه مقداریشون داره به اصطلاح برز جای عبارتیشان رو نه بوده. در این صورت دوپن در حقیقت دو بحثه نه یک بحث در صحابه دو که حسابه ما آوازه جمعی به درزون روا دو بحثه یه بحث اینه که مرموشه این صورت دو که بگه این گندم رو فرختم به کیلو گندم و طرف هم میتونه گندوم مثلا 10 کیلو ایشون سر درکیلو سرگیشان اینجا از کردیم ما صابقاً یه توضیح تغییر داریم هم مصداق تطفیفه هم مصداق رباه چون بنا 10 پیلو او 8 و 8 در مدر پیلو رباه است آیه ای روانی یه اشکال کرده که این می نیست رباه هست اما دیگه نیست چون فادر آیه که از در با شایی دارم این روانی هم, روانی هم خوبه یعنی واقعا در این روشنس فکر یکی بگوی بکنید این بخش دیگه سرش که از فکر بکنه در این در مصابق غیر از این مبارس مکاسب مثلا فرسونی در کل مبارس فر مرحوم و قدس اردگی در اینجا باقید هر بزرگاه فکر کردن تو سوشاگردی ایشان مخصوصا صاحب مدارک از کار جدید رو مستردن بسه بحث سر سر سر سر سر اما یک قرباله جدید برای مروف انصافا برداشتن مبارس خودمها رو ریشیافی کردن و کارهای خیلی لطیفی در این جهب شده کار استاد من در این خوب کار منونی روانی هم انصافا در این جهب لطاقتهای خاص خودش داری منونی روانی دو تا بحث داره در اینجا یکی اینی که اصلا این تصفیف هست یا نیست اشون بگه نیست از این تصفیف چون اشون بگه تصفیف به خاطر است که باید لزیاد از الهق خارجی مشاهره رو بشون داره که مراجعه بکنم به اوشت نشه برشون لزیاد از الهق اند مشاهره خالیشی چون از این اینسان شوید زیاده نسیه. که این دو بفت ده کیلو خروختم هشت کیلو بود ایشی که سو بفت تکیر زیاده به حق مرادشون از کلمه حق منظور سوگره مواقعاتم به نصفه خودشون اضافه کنن مرادشون از عنوان... عنوان کلمه حق یعنی عنوان انشاء ما به انشاء اونو عنوانی که بهش انشاء تعلق کنید مرادشون این اون عنوانی که بهش انشاء تعلق گرفت اگر از مشاهده خارجی بیشتر شد میده تکریف ایشون باید شیر محبه میکرده این ماده بیالا نگیر در صورت اول اگر گفت این ده دفتی رو گمدون که بعد هشت رو تحمیل داده بیستن دفتی رو خب بگید اینجا ماما هست چرا دفت چون دفتی رو ده دفتی ده در دفتی رو این معامله هم درسته هم تکریفه چرا؟ چون حق بیش از مشابهه خارجی مراجیشان از حق روشن شد یعنی عنوان اینچا عنوان انشا از اون چیو ده کلو؟ این ده کیلو بیش از این خارجی خارج شده هست بید خیلی میگم. دستیشو به یه صورت دوم این این گندم فروختن این گندم هر مراجیش هر عنوان انشا، عنوان انشا این, این گندمه. این گمه رو که واقع ششتی رویست پس اونها نمی شاید مشارهه بیشتر درسته؟ بگر کتاب اگر کتابی روانی ایشون میگه اصلا این صورت دوم این شای نیست این تطفیف نیست موضوعا تطفیف نیست چون هر زمان این بود این سه صورت جمعه بین تطفیف ورگاه ایشون میگه اصلا تطفیف نیست رواه هر هست. قبول داره رواه اما تطفیق نیست. چون تطفیق داره مداره اینه که حق از مساوره بیشتر باشه. حق مرادش اینو عنوان این شا. اون عنوانی که تعلق به این انشاء بیشت از این واقع خارجی باشه. مثلا بیین ده که به گردم ها بروختم هشتی میشه تطفیق. اما از باید این گردم ها بروختم. عنوان این این گندم این گندم که این گندم هست هر چی روز تخلافی نشد عنوان این با مشارعه خارجیتی هست نگو درشتی این گندم از که این طاقه ما کلمه ی تطریق برای رعای اونوال کامون مراد یعنی مراد در اصطلاح ها یعنی اونی که عوض قرار میده این از اونی باشه که اتخاب معامل را به شرط مخواده عنوان اینشار باشه از نقطه دیگه باشه لازمه که از اون عنوان اینشار باشه چون در بابر بی اضافه در عنوان اینشار علم به عوضه هم شرطه اگر میگن به این معنا اگر میخواد این بی صحیح باشه صحیح بودن این بی مصابق است با کنبود عوض این مراد اینه چون اگر بگی این گندوم رو بروختن بدون علم باطله به جلد عدم علم پس اگر میخواد معامله تقیی باشه این گندم با علم بشه علم بشه یک که بود یک که بود ظاهر آیان همینه اندرین دکتال و الناسی از توبون و اداکارون و زنون یخسرون ظاهرش ایمتون لاد کنخس و ناصر و زمو به قصص مستقیم این نه فقط جهده برد یعنی هدف اینه که انسان اون معامله که انجام میده صحیح در بیاد و استحفتش خیلی از اون جهد ایو هم شرکه پس چون این معامله طبق علمانیست انصافاً است طبق تفیف به نظر من به لحاظ قرفی برخور مانعی نداره این یک دو حیرت مسئله یه روا آنه فرسی جایی جنس رحبهی نباشه مثلا گفت این گندم رو سوستم به ده من و این گندم دهت چی هشت دارم. این گندم عدمش چی به ده من آیا این جا موجه به میشه یا نه ایشون نه موجه به نمیشه نهایت داره شد این گردان بنابرای درکیو باشه یعنی صحت نمیاره تخلق شرط میاره. میاره یا تخلق میاره یا تخلق جلد فلسوی میاره تخلق منظار داره عبارتی ایشان اینطوره اینجا داره اگر و فیستانی که جنس واحد نباشن تصفل معامله غایت الامر خیار مشتبی سوام اونزو که الوزن و به نهر اشتراس الام اولاقه الهندو مهمی همه و که این صاحب احتمال بسیار قدید داره که خیار هم نداشته باشه اهم کلن بروس باشه چون ایم در اشت شرط تخلق ایم موجه مشکلش نمیشه گفت این گنده هم دروس هم چون از خالص قرار این بوده در کیلو یعنی به عبارت باستان میکنم یا تخلق داری در باب عم یعنی چون قرار بوده یا بعد اخوار کرده علم برای تمام شده عرض تمامیت عرض علم هم شرکه این عرض الان با این علم ظاهرا تمام مشکل نداره غایت سال این واقع خارجی هشت گیروز دو پیلو جذابه میکنه هر حاضر ذهنه من میاد که در این ساعت دوم هم اگر اشکالی هست که از کلام شیخه از المعامل لزوم ربا این به صورت دوم و اشکالش مربوط محقق ایرانی می‌کنه و اما صورت سوم صورت سوم جمع بین هر دو یعنی به اونوا به هر دو خورده این گندم 10 کیلویی رو به تو خورده این گندم که ده کیلو شیخ ابتداعن فرمزن لم یا به خود صحه در عبارت شیخ توضیحی نهی آمده که روی شیخ معنی لم یا به خب به حاضر تخریج فنی احتمالاتی هست اینکه ببین ما نسبت ببین بشه یکی اینکه بگیم شیخ قدس الله نفسه اینجا رو به اصطلاح معتقده که نظر غرفی عنوان مقدره در این در حیث از این گندم که 10 کلوست اون مصبب واقعی این 10 کلوه اوز ده کیلو 10 کلو میفرد هشت کیلو دو پیلی تک یعنی میگه این گندم، درکه اون در اینجا با فانی در آنوان میبینه هدف اساسی عنوان احتمالا نظر اون باره باشه به احتمالا داره که سهت مدازیشان با خیار باشه یعنی بید صحیح رایت معاملات چون تخلقی شده خیار باشه باشه نه اینکه بید خاصل باشه من اصله با این حساب معلوم شد که تا اینجا دو تا احتمال ما کلن و کار من با نظر دو تا احتمال در این مسئله هست با قد نظر یک بید صحیح باشه دو به صحیح باشه به صحیح باشه و لازم باشه و لازم باشه اکمال نه خیار هم نداره سه دو به صحیح باشه با خیار خیار حالا به شهر جا برس به جز نیست اگه بگه من حق فرص دام که گفتی در چیلی هشتی دوست من فرص کنم اما به صحیحه با خیار در مقابل این دو اقتمال احتمال سه هون با اون این که قایم بشیم کلن به خیا خیارم برمیداره اگر گفت این گمزان که در کیلو سروخت به در کلو گمزان شما کلن فاصله. اصلا این و بعد هشت چیلو در بیاد اصلا کلن نه فقط به جرد ما اصلا کلن فاسده این سه تا احتمال چیه چه تا دارم پرونن لم بعد فرموزن که یک کنور اقتدام بر این حول که اونجا تو شرط مرزار کرده یعنی منجر کلام رو به یک نوع شرط برگردوندن البته خب این احتمال هست که نظرش راضی به کل در بار بخش شرط ماشه یکی نهمان که خصوص شرط مرزار این تاثیر داره فنمیان کل در شرطه حالا احتمال در مرداد تأثیر داشته باشه اون بحث اینه که من دیدو سویه کافی کردم آیا در امور انشایی اگر اون لغاقی متعدده و انشایی یک عنوان خرده این انشا در وعای اعتباط او دفتر کنید که در وعای اعتباط به عثمان خرده و همچون که در واقع تعدد هست در معای اعتبارا تعدد می آن اینه بحثی که ای یک ظاهی دیگه بحثانه که من چون ندیدم آقای متعرسی روستان من حلق میکنم اینجا اجمالا میخوام کسی به جمعه خوش با درست بشه ما در بحث مقدنه واجب از کردیم این بحث رو خب آن بحث مقدنه واجب کنم خیلیم من در کلام اصلا از ما اون که بحث درجی گرفتن متحرکی ما بحث عقری گرفتن اصلا بحث عقری لفظی چراکیه اصلا بحث مثال عرفی نام به خر با بازار عرف یا اون رو اصلا بحثی که عمل داره جای درجی نیست نام به خر چه درازه و بازار عرف مثلا این بحثی که در اونجا ما در اونجا در تقریر این بحث بحثه مختص داشتیم روش از تقریرش بود اون نکته رو این درس که آران میگن که این مسلمه که توقف زر مقدمه بر مقدمه به لحاظ تکییم تو مسلمه اون معلوم انسان تا بازار نره که نان نمیتونه این تو خونه شوشین و نان برنه این چیگه بازاره این چون توقف مسلمه اقیلیش مسلمه اما این وقتی به لحظ نداره لخی در ازار این بحث کرده تکیلی رو ما چیجور بحث مقدمه ای واضعه مدر کنیم ما یه تقییب بازا خاص خود رو ن کلاس داره اگر خلصت دیگه خود این بحثش میبود چون من زنیفه و این خیلی مجرد داره اخصاص به مرخی فنیه لطیفه در کل موادس اعتباط قانونی کلن مفیده اون بحثیه ما اگر یک واقعی داشته باشیم یک تلازمی در واقع هست تانودی در واقع هست سوی دفت بکنه در واقع تلازم هست در واقع تانود هست یک دو بی یکی از این دو طرف ت... اعتبار تعلق بیره خوب بفرده این دو سه تعلق این واقعیت سرایت میکنه به همی که با اعتبار ببین یکی دیگر تعلق بگاه کنه این نقطهی فرمیه خیلی دریجه تلازم نیست و تا آنود مثل مثلی که تلازم مثل نماشوندن با خابیدن تا آنود داره کار به تکیف نداریم رقصن بازار با نوشتن تا آنود داره شما که نویسیم مطالعه رو با باید که بازار نان بخریم باید که تا آنود داریم کار به اعتبار نداریم اینا تکیفینیه بین نان خریدن با خوابیدن تا آنوده نان خریده هم و مطالعه کرده هم تا آن رو در دست اصولی روشن شد. اصلا ریشه بود در اول 1300 سال که ایش مذرک و زمینه و اولیش روشن شد چون هر سرم هم که برن اصول ما که بعض ما هران جنبه های خامنی در حقیقت برگرفته از رابطه به این عبدالبولا بوده اون ریشه هستیش هست هست هست هست این برس که از اولا هم میاده اگر مولا بعدش عبدش گفت نام به هر سوال نام خریدن با, با نماز کندن منافع داره تا آنوز داره این تا تو زفت تحلیل هسته حالا که آمد اعتبار کرد به نماز دیگه تو زفت اعتبار به معاند هم سرایه اگر گفت نان بهر چنان که نان خریدن با نماز خوندن نمیشا پس این میاد تو تکرین ت... اعتبار هم تو تشریح هم سرایت میکنه. کنن نتیجتن نان بهر معناش از نماز نخون مثلا معنی نان بهر مراد این دلازه در زیت اونا گفتن این بوده در اینجا، هم تو آقایان ما مثل هم دایین و آزیار دیگر آقای بوده همشون کسی این تلاوزوم یا تعاند این است اصلا این بحث لفظی معنا نداره چرا بحث لفظی بحث لفظی تو مقدمه باید شد؟ باید این بحث لفظی موردش این بود اصل بر روح قانونی داره این نقطه قانونیش اینه دو مثلی دو مثلی دو همه در رعاق خارج تعاند دارن تو به آقه تشریعی به که ایش آمد اون تا آمد خارجی حبت بشه تشریعی بونی که دیگه هم حالا تو تلاعظمش هم همینطوره تو تا آمدش همین هم همینطوره فهم نمیم این خیلی با تحضیحه آمد تو بحث مقدره از زنی تا از همون فهم خیلی روشن این بحث رو محرم نمیم کنه نکته نقطه این مقتی پنیوانی ریشه ارفی داره چرا؟ چون اونا اینجور بفهمیدن خوبه چرا بخش کرده یا یعنی اگر رو در درشک و بند درشک و به خر؟ اما دیدی دید این آدم خیلی مقدس ناشون نماز خوندنه میگه به میگه نگه نگه تم برو خر بخر یا بخش لفظی و این جبت میگه یعنی چرا نما اینجور فهمیدن نان بخر یعنی نماز نکن چرا نماز میخونیم جدوشو نبخونیم بسیده <تصفيق> بس این بحث این لغت بخارفی بسیده است این تطورش تا این لغت قانونی است لغت این الان شما فکر کنیم سال، و لذا ما از بحث مقدر نواجه این بحث مقدر نواجه باید نداریم که بحثه شما درباره خود حقی بحث کنیم خود اعتبار قانونی ما کار بحث عوامه رو در حضرت تو ملازمات رو بودن. چون ملازمات هم بی خودتون رو تو ملازم. بس تلازم هست. این ببرید توی بس خود خوب. نه سی را جبر حکم اعتبار قانونی برد کردید. یکی از برد های ما در اعتبار قانونی این اصلا ما در جای اعتبار قانونی میکنید. این اعتبار قانونی یک واقع خارجی داره. تو اون واقع خارجی تلازم داره. تو اون واقع خارجیش تعارض داره این اثبات بدیش که الگو گرفته ده هر دو این بحثی اصولی که اول شد و لغت قال میتونه که اینه آیا این چ... سه روشیه چون در خارج تلازم دارن این تلازم خارجی سبب بشه که تشریع هم سرایت بکنه علامت اینالله حضرت بولگار دارم و در پول اما میشه خورده مقداری که کرده. دارم در حکمی نکارش هم میگن. از ما در کار کلا دوم دارن نتیجه ندیدند. خب اینم از همینه. از دیگران ترازو خارج می‌بندیم وقتی که مثلا حال یاد باز کرده کوچافر اینا در مقدمه واجبه واجب واجب میگن مقدمه واجبه واجبه نیست اون اینه همین چیزی که برمیاد خوب دقت بکنید اونایی که میگن مقدمه واجبه نیست که تارو چیزی میآدش مقدمه اونا بحث تنیشون اینه تلازم در خارج هست اما مقام تشییع خارج هست اون نکته یک فهم میشینه الان بخشی رو بخشی رو بخشی رو بخشی رو میشینه نکته در خارج تشریف به یکی خورده همچنان که یا در خارج تلازم دارن این منشر میشه این تشریف اون لازمم بخوره وچه سره یا تلازم مخارجی. و که عظم سریان اون تلازم و خاضی را توی مقام تشریح نداره مقام تشریح در اون رو نامدفرک هایی به بادرستن توش با داره خود تلازم و خالجی داره عبور داره همین نکته که بروز گفتن با اولیشان و لذا اینا آمدن گفتن ما در عقیقه باسق قانونی خوب دفت بریم به طور کلی دیدیم به چقدر واسع میشه به طور کلی ما روی عنوان میریم نروی اجزا میری نه روی تلازماتش میفید نه روی تا آمودش میفید گفت نام ده هم چیچی نه دسته که نخواب نه دسته نماز این بحثی که در کل دسته شیعی سر در مصور سریان یاد داره چون تنفر و بندیدن بیدیم نه به ذریف ولکی محبت کرده شون بسه خود رو بنده گاهباری تکرارشی وقت ما از کن انصاف رضیه همینه این سابقا دیده اینه مقامه اعتبار اینجور در بابر این شاهان اگر ما باشیم و زباده در حبله خوب اگر گفت این خانه رو فروختم شرکی برش کرای دار اوصابی برش مثلا اگر یک خانه دارم 20 متر یا اون فاصله داره فروختم در این عرب اوناکه 200 متر فاصله شد. ما باشیم و تبقاقله در هیچ موردی حکم به تخصیف سمن نمی کنی. ما باشیم اتباه باقید اعزا را آقای قبول کردن مختصیف اصلا اعزا هم نمی چرا؟ در شروع هم نمی کنی. در اصاب هم نمی کنی تخصیف سمن چرا؟ چرا اونی که وقعه و وقعه این شاهره خانه ای که بیزمس با خیابان فاصله داده طبق قاعده هیچ چیزی رو به اداری وقت سرار نمیدید در اصاف آهان قبول در کردن در, تر... در اصاف فقط وقت سهت پارش کردن نموکنیستون ترگوزه ما باشیم مصبق قادر نمیدیم ما باشیم مصبق قاعده ما هیچ کتب رو به چیز نمی کنیم تخصیص نمی کنیم را تو گفت این خانه بیس متر با خیابون فاصل داره بیس بی از خیارت خلافی شرط بشه میخوای معامل ننزا کنم میخوای اما بگیم حالا که بیس در میجون کم کن, کن, کن از سورش. این نمیتونه بشه. به خاطر صده هشتات فاصله با خیابان این مقدار از کم بشه و عمد لازم بشه اینو نمیتونه انجام بریم این طبق قاعده. چه قاعده بی امایم یک با مالایوملک دور درست نیست اگر بیگ خدولی گفتین از تو باطل نمیشه چه قاعده بینم یک با یوملک با مالایوملک اگر مثلا این با هم طوری خوب دلت را یکی گشاند داره چه باطل چون خوب که باطل معنی هم باشه اگر بخواد در این جوجا بگیم در یک پیشطبیه در این سینی این چهره به اصطلاح یک دلیه خاصی یدیست ویدیه که ما دایر مدار انشاییم این عنوان انشاییم مرمول هایی من, من توضیح روزم شده می روید خواهده محاسبه و اینشان اشکال کرد ایرانی در این جهت ال قادم متضب شده ایشون رفته به عنوان انشا مرمولی لذا مرحومی روانی محتقه در زنی صورت سوم معامله اصلا باطله چون این نکته فندی داره این رویه تصفه این اصلا این آقای آمون خیلی سوزی نه مراد, مراد مرحومی روانی از این عبارت اینه ما در واقع این شاهده تابه همون عنوان که تعلق از این ما تابه عنوانی بریدونی عبارت ایشون ای در این سواده سه با میده به اینشان می از عنوان این از عنوان ده کلو از متحقه و, و گفت این گمزم در پس ایشون ذراقه تکار ولا عنوان متحقه این مشاهد که هست. این گمزم مخالبی کرد اون ده نیست. ببینیم ولیس المبیعو حاضر مشاهده به ای عنوان کان ببینیم مبی موردشون عنوان اینشاهه اینشاه نه رسیسون اینگلده و خارجی هر عنوانی داشته باشه هشتی باشه این یعنی چی؟ یعنی مرمومی روانی دقیقا دنبال عنوانه ولیس المبیعو حاضر مشاهده به ای عنوان کان لدن آن وانه پی ای مساق کنم. شما خود دیگر در آزادی در آشنش از اونکه این اصطزام بیگیرد یعنی که شما یک دوباره که ای میکه. آماده نخی به این مرناش ملتزم شده، و این مرناش نفی خانیش اینه. نخ این شرنا در نخیر قانونی ما دقیقاً دنبال و این ما عنوان وانوانی که انشاء به شد شده مسترد مونده. اون اون زمانی چیه؟ این گندمی که داشتید نه این گندم هر بخواد باشه نه درش رو در بزنید این گندم رو لا به گوشه. تو این به میشه این گندم 10 با هم؟ حالا شما موقعی از بالا رو دیگه قبول نکنید دیگه نه اینجوری نیست. اون بحث دیگری. ایشان موثر رفته اوف اینو میفهمه؟ موش از سبب بیاد زیر بنویزه در مورد اعتباری اهمیت همیشه امر این واقعیت نداره. چرا شما می‌دونم بحث مقدر می‌گویید؟ میگی آها این دست حل‌ازون داره. اگر می‌نشایی کی خود چرا بویی سرایت نکرده؟ اون همه میگن که با آن ری اون حل‌ازونش واقعیه. امر این واقعیت نداره. امر این را من ایجاد می‌کنم. مذهب ایجاد می‌کند. وقتی من ایجاد کردم، نمی‌شه که ایجاد کرده نان خریده ایجاد کرده. چون واقع نداره. اون واقعش که بازار رفته دیگه انسان نکرده. من یه وقتی یه نظری میگه میگه امرای انشایی واقعیت پیدا نداره. ببین چه انشای کرده. چی ایجاد کرده؟ اون که ایجاد کرده اینه؟ این گندو ده کیلویی. نه ده تنها، بلکه در غیر این گندم نه این گندو و نه ده نباشه. و نیتر مفید حاول مشاهد به این عنوان امکان و نره عنوانه به این اصلاح ای امکان چرا آله نقطه ادلا بجهل ارخا اشاره اول غرص مرادش از اشاره میگم دو وصفا در چی بود؟ میگه چه در نیم دارید؟ چرا؟ چون این امره اعتبارید تو نقام اعتبار تو نقام اعتبار هر دو چون چون اگه ارخان میکنید؟ میگید نه ما اگر دنبال اشاره رفتیم باطل باشیم دنبال... یا مثلا شیار بیاره. یا دنبال دنبال عنوان رفتیم سریع باشیم ازلا بر جل ارخاه اشاره میگم چون منون ایرانی خوب به لقطتی که من ارزمتن بیار نکردم هنگر ایشون هر کنون ما در بابده دید دارمزار را عنوان بگیم ایشان به چه عنوانی تعلقه ده کرده؟ اون اگه اگر موهنر شد درست می دلان تاویشی ادلا وجه الالقاء علی اشاره تعللا الله الله مستن لازمو الاغرب کلیه ما ها پوشن کلیه ها یعنی این گندم در کیلو این عنوان محاسبه نشد چون ایشو سرم ده هست ده در دیرین پیدا میشه دو کیلو وزاکی در میشه اما اینی دقت کن. در همون بیشتر به همون نوستیکی مال کنم، هرسی کننده، و هادل هوکین، سیارون، شیکولو مشاور هنری، اتکه انواع من از عنابی، این استعدادش اینجا نداره. مثلا اگر گفت این کتاب مکاسه بیش از این، ایشون این کتاب مکاسه بیش از این، این کتاب چطوره بیش از اون بوده؟ برای نگی پشتیجه مکاسه، ایشون میگه باشه. نکی این که کفای خبین درست دید یا به دنبال اشاره داریم بگیم کفای خودسته یا به دنبال عنوان داریم یک کفای دیگون بده ایسون میگه نه در اینجا بخور بگذار بکنیم چون مستقی کنیم این کفایی ببینیم این کفایی ما چه در این مام تو منامه اینشا قبول کنیم یکی اقتار بکنیم زاده انشا اینه اون نقطه خیلی روشن بیهن. اون نقطه اینه نقطه زیرونه احسی هستی واقعی نیست تو به آه اعتبار پیدا میشه تو به آه اعتبار به نرزار امراض پیدا میشه خسر شما جمع بود به اشاره به عنوان و در خالق این نیست جمع به این فی کل خوشا هست بیه تخت و منوان در عناوی کمان اضافیه ها و زهر مثلا گفت این حلال رو خروفتن بعد ما شو حلال نیست و زهر انه هون رو کن گفت این افتر رو خروفتن آسر رو خروفتن تا زهر انه او همارون اوحان هجره گفت این چنیزه که خروفتن مرد در آمد و زهر انه ها شد دو از بسید برشه در رو بنایو فرده بیگه بحث این هم گفتی ایشان کاری رفتی به ما نداریم بحث دیگری اما در این روی روزن درز گفتن اگر از قبیل مثلا گفت مثل این کمید رو گفتن عرض در خوب این باطله. اما از قبیل گفت مثلا این عرضی که در هر دلیلی مثلا بیس تبه میشه، نیسه بعد من در, در دو تبه می اینجا درسته یعنی وقت درست به این وقت ذاتی وقت فهمیدن این فرق کهی روشن به نظر میرده حتی به با و